اوضو بالله من الشیطان الرجیم و علال اعرافه رجالون يعرفون کلن به سیما هم و ناده و اصحاب الجنه سلام علیکم لم يدخلوها و هم یتمعون گفتن این منظور چیه؟ بین نه ما هم هجابم که قبلش بود مردم روز قیامه سه دستن بعضی اون اینکه هنکه حسناتشون بر سنجیات قالبه میرن بهشت بعضی ها به بعض بر حسنات قالبه میرن جهنم بعضی هر دو مصابیه ترجیحی حسنات بر سیعات یا به عشد ندارن اونایی که حسنات غالب میرن بهشت یک سلس جمعیت کم میشه اونی که سیعات غالب بر حسنات بری جهنم دو سلس کم میشه سلس آخر تو عرفات بای میشن. اینا منتظرم ببینن درباری اونا چه حادثی اتفاق میفته چون مساویه دیگه نه استقاق جهنم برن نه بهشت. وقت یه چیزی بیاد اینو از جهنم بندازه تو بهش اینا منتظر اونن بله طمع دارن که خدا تفضل کنه اون دارن بفرسته بهش لنم یل بخلوه هم یتمعون نوارد نشدن موندن اونجا اما طمع دارن که خدا اون یه جزء رو این این سنگیم بشه و سیاث برن بهش انشالله. قرآن الله اعراف اینجوری برنامه میکنه بله این دسته ایمانو دارن اعمالشون بله ثواباتشون اعمال کی ایمان نبود که میرفتن جهنم بله اونو یاره به سیماهم میشن صلی الله در دنیا زندگی کردن با اینو همشهری ان او رفته بهش رفته جهنم خودش مونده اونجا منتظر رحمت خداست